خورما چه موقعی خورمه ها را بفروشی یا بخری موعد تحویل پول آنها چگونه باشد. خورما ال فصل خرما هست این مسئله رو بگن کمی خیلی کار میکنن خورما مسئولی مرغوب هست، مصرف سال هست، خراب هم نمیشه تا میوه ای که حالا جمع میشه داخل حلب میره داخل سردخونه میره به صورت مختلف قابل نگهداری است حیثیت غذایی خیلی بالایی داره اینجا چرا داخلین سود نید با این که فروشی بالایی داره قیمتش بالا هست اما همیشه متضرر میشن یا خیلی از این پول بعضیا که میبینم اما اکثر که غذایت بخش نیست برای خیلی ها علتش چی علت خلاف شرح هست وقتی خلاف شر معامله صورت بگیرد برکت برداشته میشه حدیثی داریم که نبی مکرم اسلام صلی الله عليه و سلم داخل صحیح مسلم و صحیح بخاری میآید البیعان بالخیار معلم يتفرقا تو تا معامله اختیار دارن وقتی معامله تا زمان از هم دیگر جدا نشدند وقتی جدا شدند میگن این این بینا اگر مشخص کردن کالا خود را ای بشرا را بورکه فی بیهما این صدقا و بیان اگر راست گفتن و مشخص کردن که فی بیهما و ان کتم و کذبا مویقت برکتو بیهما اگر دروغ گفتن و ایو پوشیدند برکت معامله برداشته میشه در خود خرما چرا برکت نیست اگر حس خیلی کبر خیلی حاکم نیست یا طوفان میآید اوا ای زقاص پرداخت نمیکنیم دو این است که یک مشکل اساسی داریم دو مشکل اساسی در فروش خورما داریم از کل میوجات مشکل اول که در خرماها در در خود شهرهای ما مشکل اولین است که معاملات قبل از اینکه قابل, قابل معامله باشه خرما هنوز نرسیده و قرمز یا زرد نشده نزدیکی پخته شدن نیست میفروشن اگه وقتی که شکل نگرفته بخوام بفروشن این جایز نیست اما اگر رنگ شده بود قد خودشو گرفته بود فروختنش جواز دارد. اما مشکل بعدی خیلی اساسی هست این که در هنگام معامله هرگز قیمت را مشخص نمی‌کنند. چهکاری قیمت مشاخص که پول میری میگه هر وقت فروختم این معامله ناجایز هست. همیشه فروشنده ناراضی خریدار که حالا دروغ زیاد میگه میدم یک بابات میدم خرم ها و رفتن تهران هنوز تو سردخونه موندن فروخته نشدن دروغ پول های امساق اله کم کم ست تومن دویست تومن یک میلیون تومن کم کم میده هزینه ها هم اینجا دیگه پرداخت نمیده چرا کم کم وقتی پرداخت میکنه نه هزینه ها داده میشن مصرف میشه خورده میشه از اون پول خیری نمیبینی همین دروغ پس در خود معامله تعیین مدت واجب وقتی اگه شما. اگه بسیلا روی قرض بود، دین بود، اینجا باید مدت را تائین کنید. الی اجل مصممه داخل قرآن خداوند متعال در سور بغیره فرمون الى اجل مصممه بود اجل مصمم. مشخص که پولهارو ها رو حتی مدت نباید مجهور باشه، حالا تا فروختم، تا ماه وارک رمضان نه، بیگه تا بعدها میدم حتی فقها ها گفته اگر کسی گفت که تا حجاج برگشتن، حج اومدن و تاریخ برگشت اونها مشخص نیست، می جایز نیست پس اینکه داخل شهر ما، خود بنده هم وقتی که میگیرن ها میرن تا سه چار سال، الان پول هم در کار بیز اما این باید تعیین بشه کی میدی مشخص کن تا اون صاحب حق به حقش برسه خیلی ها داره می فروشن، رو فروخته یک پول خوب دستش اومده در سرمگزاری میکنه کار میکنه تو تمیز هم وقت حرام باله حرام کار میکنه این کار درست نیست پس وقتی که خورباش محصول شما مدت دار فروخته میشه پولش نقد نیست باید مدت را تعیین کنی نباید به این صورت بفروشید چک بگیر مشخص کن که پول میری و اونجا حتی اللہ رب العالی فرمود فرهان و مقبوز رن بگیر یعن چیزی اونجا گروه بگی زمانت بگی تا این پورتو بگیری. تپورت اینجا ظاهی نشه الله رببرالی چرا فرمودن حفظ اقتصاد افراد. چون اقتصاد جامعه داری ما کشوری داری، اما اقتصاد خانواده داریم. باعث هر حفظ بشه. بخاطر حفظ اموال مردم الله رببرالی فرمودن فرهان و مقبوضه. رهن بگی یعنی یک زمانت بگی تا پورت بدن. انجام چه چیک کارش کی بگیری مدت تا این که بگی هر وقت فروخته می‌نشه معامله. یا که الان من دیگه بایر ماه بارک رمضان میدن اینش رو میدی؟ اول ماه میدی آخرش میدی وسط میدی که میدی؟ باید مشخص بشن اگر هم رعایت میکنید شما مدت را مشخص کنید اگر فردا تو اون وقت شما پول نداشت اونجا میتونید صبر کنید تخفیف بدی اما این که الله سبر نه منجا مشخص نمیکنین درست نیست برای اینو این رعایت میکنی خیلی مهمه